ملیحه میگوید گلبانو گل بانو چقدر لاغر شدی؟ میگویم، از محسن چه خبر؟ میگوید، به پدر و مادرش ملاقاتی دادن. مینشینم گوشه دیوار، آفتاب پاییزی بیجان است. چند نفری از هم کلاسی بازی می کنن. بیست و هفت روز از مهر گذشته است. قرص صورتی را در می آورم. بدون آب گرد می میدم از نگاه ملیحه همدردی میبارد به رویش لبخند میزنم میخوای برم آب بیارم نه عادت کردم خانم عزیزی معاون مدرسه از روی سکوی جلوی در با دست مرا میخواند. فکر می کنم با تو کار داره ولن میشوم بازم میمونی خونه پسرموت ها خانوم عزیزی منتظر است. میروم. خانم خانوم مدیر با کار داره. پشت سرش وارد دفتر میشوم خانم خانوم راستی توی چشماییم ظلم میزند. سرم را می اندازم با این. بشین. روی صندلی فلزی می نشینم. خانوم عزیزی در دفتر را میبندد ضعف از پاهایم شروع می شود. احساس خفگی میکنم. خانم راستی میگوید اگه شاگرد اول نبودی ثبت نامت نمی کردم. چیزی نمیگویم. درسته گواهی پزشکی آوردی ولی من مسئولیت دارم بالاخره بیماری روانی کم چیزی نیست خانم عزیزی میگوید بعضیا میگن به خاطر اعدام این دختره کی بود اسمش اختر اسفندیاری به این روز افتادی چیزی نمیگویم. خانم راستی میگوید حالا میخوام از زبون خودت بشنوم میخوام بدونم چی شد اینجوری شدی میدانم اگر رابطم را با اختر انکار کنم بیشتر پاپیچم میشوند خانم مادرمون تو خونهشون کار میکرد یعنی ما خودمون بعضی وقتا براشون کار میکردیم گاهی که شاگرد اول میشدیم برامون روسری سری گل سر یا دمپایی میآورد. به خاطر همین چیزا ما دوستش داشتیم وقتی کشتنش خیلی ناراحت شدیم به خاطر همین خانم عزیزی میگوید برای بچه فودا ناراحت شدی چیزی نمیگویم خانم راستی میگوید من که باور نمی کنم تو به خاطر اون به این روز افتاده باشی به خود خانم به خاطر اون بود از لحنم حماقت میبارد دلم میخواهد زودتر از آن فضای بسته بیرون بیایم خانم عزیزی میگوید حالا اینجا گفتی جایی دیگه ای نگیا. آدم که به خاطر یه ضد انقلاب روانی نمیشه پاهایم را جمع میکنم احساس سرما شدید میکنم حالت تعفو دارم میگویم خانم ما که به شما نمیتونیم دروغ بگیم احساس میکنم چند سال کوچکتر شدم دلم میخواهد انگشتم را بالا بگیرم و بگویم اجازه خانوم؟ خانم راستی میگوید خلصه گفته باشم من نمیخوام برای شاگرد اول مدرسم پرونده درست بشه راجب این موضوع با بچه ها اصلاً حرف نمیزنی ملتفتی که؟ بله خانوم خانوم عزیزی میگوید حالا چرا رنگت پریده؟ سردمون خانوم خانم راستی میگوید خب برو تو آفتاب بشین بلند می خانوم عزیزی می گوید. فقط یادت باشه ما خیلی چیزا میدونیم. در را باز می کنم. خودم را می بیرون دلم میخواد گریه کنم